بخش پنجم خلق پدیده هایی که نبودنشان بر ما تأثیر می‌گذارد گذارد نه بودنشان سلطان ولد قنیه سفر 644 بعد از مدتها صبح جمعه پدرم به اتاقم آمد. به نظر خیلی پریشان احوال می رسید. پای چشمهایش سیاه شده و گود افتاده بود. نگاهش جور دیگری شده بود. انگار شب اصلا نخوابیده بود. اما بیشتر از همه محاسنش اسباب حیرتم شد. در عرض یک شب کلن سفید شده بود گفت ولد پسرم خواهش می کنم کمکم کن صدایش چنان بغزی داشت و چنان شکننده بود که جگرم آتش گرفت دویدم زیر بغلش را گرفتم گفتم امر امر شماست پدر عزیزم هرچه بگویید روی چشم انجام می دهم. مدتی سکوت کرد انگار زیر بار حرفهایی مانده بود که میخواست گفت، شمس رفته ترکمان کرده نمیدانستم چه بگویم؟ حیرت کردم متاسف شدم. اما راستش به این هم فکر کردم که شاید این طوری برای همه بهتر باشد. پدرم این اواخر خیلی دشمن پیدا کرده بود. همه اش هم به خاطر شمس. قبلا معتبرترین آدم این شهر بود. الان اما زیاد شده بودند کسانی که دوستش نداشتند و از او انتقاد می کردند. می, ترسیدم. می خواستم همه چیز مثل قبل بشود. شاید هم علا حق داشت. اگر شمس از زندگیمان بیرون می رفت، دوباره به آرامش قبلی من نمی پدرم طوری که انگار فکرم را خوانده باشد، با نگرانی به صورتم نگاه کرد و گفت ارجمند است او، خود من است، فراموش نکن. شمس و من، دو انسان جداگانه نیستیم در اصل یکی هستیم ماه یک روی تاریک دارد یک روی روشن شمس روی سرکش من است او جنبه آسی من است کسی نمی بیند اما در هر عصیان او من هستم سرم را تکان دادم شرمنده پدرم شده بودم مدتی سکوت کردیم گفت خواهش میکنم شمس را پیدا کن البته اگر خودش بخواهد که پیدا شود برو بیاورش به او بگو که در نبودش چقدر پریشان شدم هایش به پچپچی حزین بدل شده بود به او بگو که نبودنش عذابم می‌دهد به پدرم قول دادم گفتم شمس را هر جا که باشد پیدا می‌کنم و برمیگردانم پدرم دستم را گرفت و با سپاس فشرد نگاهم را دزدیدم نمی‌خواستم نگرانی را در چشمهایم بخواند در طول هفته کوچه های قونیه را گس کردم. سعی کردم ردپایی از شمس پیدا کنم. در عرض این مدت هر که در شهر بود قضیه گم شدن شمس را شنیده بود. هر کسی در مورد این که کجا ممکن است رفته باشد حدسی میزد و هرچه به دهانش می آمد می گفت در همان اسنا، به گدایی جزامی برخوردم شیفته شمس بود مرا با آدمهایی مثل خودش بی پناه و بی و بی کار آشنا کرد همگیشان یک نقطه مشترک داشتند شمس در گذشته به کمکشان آمده بود حیرت کردم پس این همه طرفدار داشته شمس و من خبر نداشتم. این همه مدت فقط به حرف کسانی گوش داده بودم که دوستش نداشتند. متوجه نشده بودم چقدر دوستدار دارد. شبی خسته و کوفته به خانه برگشتم. که را فوراً کاسه شیر برنج برایم آورد. شیرین بود و بوی گلاب و دارچین می کنارم نشست، مشغول خوردن که بودم، با شفقتی مادرانه لبخند زنان تماشایم کرد. متوجه پریشانی چهره شدم، در عرض یک سال چقدر پیر شده بود. که را کمی بعد پرسید، شنیدم دنبال شمس میگردی. درست است؟ سرم را تکان دادم. گفت خب میدانی کجا رفته گفتم نه نمیدانم خیلی شایعه هست میگویند به دمشق رفته اما کسانی هم هستند که میگویند به اصفهان قاهره حتی شهر زادگاهش تبریز رفته باید همه جا را سر زد من فردا راه میافتم و به دمشق میروم سه نفر از مریدهای های پدرم هم به آن سه شهر دیگر می روند صورت که راه حالتی با وقار پیدا کرد زیر لب چیزهایی زمزمه میکرد طوری که انگار با صدای بلند فکر میکند با لبخندی توم با نگرانی گفت: میدانی: پدرت انگار دیگر با شعر حرف میزند از صبح تا شب سکوت می کند. بعد وقتی هم که شروع به حرف زدن می کند، از دهانش شعر می فکر کنم در نبود شمس دارد شاعر می شود. نگاهش را به گل قالی ایرانی که روی زمین پهن بود دوخت. نوک موژهایش اشک جمع شد. نفسی کشید و یک دفعه این بیت را خواند. شمس تبریز تلویی کن از مشرق روح که چو خورشید تو جانی و جهان جمله بدن. متوجه وضعیت بودم که راه دوشار عذاب وجدان شده بود. از رفتن شمس بیشتر از همه شاید او خوشحال شده بود. دست کم خیالش راحت شده بود. از طرف دیگر حاضر بود برای خوشحالی پدرم هر کاری بکند و خیلی خوب میدانست خوشحالی پدرم به وجود شمس وابسته است. برگشتن شمس اما به این معنا بود که پدرم بار دیگر که را و ما را نادیده بگیرد این طوری که را سر بد دراهی گیر کرده بود شاید یکی از بدترین دوراهی هایی که زنان ممکن است به آن بر بخورند گفت نمیدانم به بهای رنج و ناراحتی شوهرم هم که شده می خواهم کنارم و جلو چشمم باشد یا می‌خواهم به بهای رنج و ناراحتی خودم هم که شده او آزاد و مستقل باشد برای اینکه مزه دهانش را بفهمم پرسیدم اگر نتوانستم شمس را پیدا کنم آن وقت چه سؤالی که از دهانم درآمده بود خودم را هم متعجب کرد اما دیگر پرسیده بودم که را در حالی که در چشمهایش بارقه های امید دیده میشد گفت آن وقت دیگر چه کاری می توانیم بکنیم؟ کاری از دستمان من بر آید همانطور که پیش از آمدن شمس بودیم زندگی من ادامه می دهیم. فهمیدم با کنایه چه میخواهد بگوید. مجبور نبودم برای پیدا کردن شمس تبریزی به راه بیفتم و تا دمشق بروم. اگر میخواستم می, می روز بعد از قونیه خارج شوم، مدتی اینجا و آنجا گردش کنم، کاروان سرایی راحت و تمیز پیدا کنم، چند هفته بعد برگردم و بگویم از بس دنبال شمس گشته پاهایم تاول زده. اما چه کنم؟ انگار آب شده رفته توی زمین. پدرم حرفم را باور می اینطوری مسئله هم خود به خود حل می شد. این کار نه فقط برای کررا و علایدین بهتر بود. شاید برای طلبه ها و مرید های پدرم هم فایدهش بیشتر بود. حتی شاید برای خود من. آرام گفتم که را به نظر تو چه باید بکنم؟ اما این زن که سالها قبل دینش را عوض کرده و مسلمان شده، پس از مرگ شوهر اولش به عقد پدرم درآمده، سالها در حق من و برادرم مادری کرده شوهرش را آنقدر دوست دارد که شعری را که او برای کس دیگری گفته از بر کرده در طول زندگی همیشه از حق خود گذشته و مراقب بقیه بوده نتوانست دهانش را باز کند و کلمه‌ای بگوید لحسی انگار در درونش حرفی برای گفتن نمانده بود آن لحظه بود که درک کردم جواب این سوال را خودم باید بدهم به جستجوی شمس رفتن یا نرفتن آزمون من بود